فصل بیست و پنجام پام که رسید بیرون تازه داشت آفتاب میزد هوا خیلی سر بود ولی اینقدر عرق کرده بودم که زیادم بد نبود نمیدونستم باید کدوم گوری برم نمیخواستم دوباره برم هتل و پول عیدی فیبی تفلکیو خرج کنم به خاطر همین انداختم طرف خیابان لگزینتون و با مترو رفتم ایستگاه ترمینان اصلی. هم وسایلم اونجا بود هم که گفتم تو سالن انتظار مسخرش میگیرم رو یکی از این نیمکتو میخوابم. همین کارم کردم. اولش بعد نبود چون کسی اونجا نبود و میتونستم پامو رو صندلی جمع کنم. حال ندارم حرفشو بزنم. خوب نبود. سعی نکن تجربش کنی. جدی میگم. حالا تو حسابی میگیره. فقط تا ساعت نه خوابیدم چون یه میلیون آدم ریختن تو سالن انتظار و منم پامو گذاشتم زمین پام که رو زمین باشه خوابم نمیبره این شد که پا شدم هنوز سرم درد میکرد تازه هم شده بود حال گیرترین لحظات عمرمو میگذروندم نمیخواستم به آقای آنتولینی فکر کنم ولی ذهنم نمیتونست مقاومت کنه دلم میخواست بدونم به خانم آنتولینی میگفت با هم چی کار کرده البته زیادم مهم نبود چون میدونستم آدم باهوشی و خوب میتونه همه چیز رو جمع جور کنه. مثلا بهش میگفت حال کردم برگردم خونه. جای نگرانی نداشت. نگرانی مال جایی بود که بیدار شدم و دیدم بالا سرمه. نمیدونم. اصلا شاید من اشتباه کردم. شاید عادت داره آدمی که خواب نوازش کنه. نمیشد با اطمینان راجبش خضابت کرد. حتی به این فکر افتادم که وسایلمو جمع کنم و برگردم پیشش بهش گفته بودم برمیگردم به خودم گفتم حتی اگه همچین آدمیم هم باشه باز با هم بد برخورد نکرده همه که به اجازه رو میداد که نصف بشوی با خیال راحت بهش زنگ بزنم و برم پیشش خودش کلی معرفت میخواست تازه برام اون همه درباره اندازه و حد فکر رو این چیزا حرف زده بود از اینا گذشته اون تنها کسی بود که رف روی جیمز کستلو پوشوند و بردش در موگاه. من داشتم به همه اینو فکر می کردمم بیشتر فکر می کردم بیشتر حالم گرفته می شود. جدی جدی فکر کردم باید برگردم پیشش. اصلا شاید از روی مهربانی این کار کرده بوده. فکر کردن بیشتر به این موضوع فقط باعث می بیشتر به هم بریزم. از 10 بد منم جوری درد گرفته بود از کم خوبی درد می‌گرفت و میسوخت سردمم شده بود با خودم دستمال نداشتم تو چمدونم بود ولی حوصله نداشتم برم سراغ چمدون و جلو چشم جماعت بازش کنم یه نفر رو نیم که رو ول کرده بود رفته بود گفتم بخونمش تا شاید دقیقه ای هم شده فکر آقای آنتولینیو هزار تا چیز دیگه از سرم بپره اما مقاله‌ای که خوندم بیشتر حالمو گرفت مطلبی بود درباره باری هرمونا توضیح داد که اگه هورموناتون سر جاشون باشن سروزیتون چطوره ولی من اصلا شبیه توصیفاش نبودم درسته این آدمی بودم که اوضاع هرموناش بهت جور به هم ریخته همین یو نگرانم هم کرد بعد یه مطلب دیگهی خوندم که می گفت از کجا بفهمیم سرطان داریم نوشته بود اگه توی دهنتون زخمی داشتین که زود خوب نشد ممکنه نشونی از سرطان باشه. بعد منم یه دو هفتهی بود با لیله هم زخمی شده بود با خودم گفتم حتما سرطان گرفتم مجله عجیب حالم رو سر جاشا بیخیال خوندنش شدم بعد بلند شدم یکمی را برم گفتم سر دو ماه کارم تمومه جدی جدی گفتم کارم تمومه مطمئن بودم خب آدم وقتی بدونه داره میمره زیاد حالش خوب نیست هوا بوی بارون میداد ولی رفتم پیاده روی سبونه نخورده بودم البته گرستم هم نبود ولی گفتم باید یه چیزی بخورم که یه ویتامینی چیزی داشته باشه رفتم سمت شرق شهر اونجا رستوران ارزون زیاده نمیخواستم زیاد پول خرج کنم سر را از کنار دست دوتا کارگر رد شدم که داشتن یه درخت کاجی از یه وانت پایین میزشتن یکشون به اون یکی میگفت نگه دارین دست خرا رو به خاطر میگن طرز صحبت درست با درخت کاج شب کرسم <تصفيق> خنده دار بود خنده داره حال به هم زن. حسابی خندم گرفت این ضایع ترین کاری بود که میتونستم بکنم تا زدم زیر خنده نزدیک بود بالا بیارم حتی تا نزدیکیهایی بالا آوردنم رفتم ولی برگشت پایین نمیدونم چی شد؟ نه غذا ناسالمی خورده بودم نه اینکه معده ضعیفی داشتم ولش کن جلو خودم رو گرفتم. گفتم بهتره برم غذا بخورم رفتم توی یکی از این رسطورانه کسی فرزون نشستم دوناتو قهف زدم البته دوناتشو نخوردم راحت از گلوم پایین نمیرفت آدم اگه حالش گرفته باشه خب آبم راحت از گلوش پایین نمیره پیش قدمت آدم خوبی بود بدون اینکه پولش پولشو حساب کنه دوناتو برداشت فقط قهوه خوردم بعد رفتم طرف خیابون پنجم دوشنبه بود و دم دمای کریسمس بود و همه مغازا باز. بعد نبود قدمی تو خیابون پنجم زدم. حالا هوای شبعید بود. کلی باوانا ریخته بودن تو خیابون. هر کدوم گوشه‌ای و زنگوله شون وایساده بودن. دخترای یعنی آن جمع کنه بدون آرایش مارهش دیلینگ دینگ زنگوله را انداخته بودن. این مثلا دنباله دوتا راهبه میگشتم که روز قبل سره میس سبونه دیدمشون. ولی پیداشون نمی‌کردم. میدونستم پیداشون نمیکنم هم گفته بودن اومدن برای تدریس ولی گفتم ضرر نداره چشم برگردونم دنبالشون حالا هوا زیاد شب شد یه حو سر وکله میلیون بچه پایین شهری پیدا شد همشون یاد داشتن از اتوبوس ها پیاده می شدن و میرفتن تو مغازه یا برعکس با خودم گفتم چی می شد فیبی الان اینجا بود بچگی از سرش افتاده که بره جولو اسباب بازی فروشی و, و جیغ بکشه ولی دوست داره تو شلوغی باشه و به با آدمو نگاه کنه کریسمس دو سال پیش با خودم بردمش خرید خیلی خوش گذشت اونم رفته بودیم فروشگاه بلومینگ دیل رفتیم قسمت کفش فروشییاشو وانمود کردیم مثلا فیبی میخواد کفش بخره از اون مدل کفشهایی که بندش بعد از هزار تا سوراخ رد بشه فروشنده خول شد فیبی هم نامردی نکرد 20 تا کفش امتحان کرد و فروشنده بیچاره هر بار بعد بندی کفش رو تا آخرین سوراخش رد میکرد. کار زایه‌ای بود ولی فیبی کیف کرد آخر سرام یه جفت کفش کالج که توش پاش بود خرید فروشنده خیلی خوش برخورد بود گمونم میدونست داریم مسخره بازی درمیاریم چون فیبی خانم نمیتونست جلوی خنده‌ش رو بگیره ولش کن خیابونو تا انتها رفتم گرواتم نداشتم، مهمم نبود یهو و یه حالی شدم هر بار میرسیدم تای خیابون می‌خواستم میخواستم برم اون طرف خیابون حس میکردم امکان نداره زنده به اون طرف خیابون برسم خیال می‌کردم همینطوری محو و محو و محو در میشم و دیگه کسی پیدام نمیکنه خیلی ترسیدم باور نمیکنی چقدر ترسیده بودم عین چی عرق میرختم سر و گردن و لباسم خی سرخ شده بود کار دیگه ای کردم هر بار می رسیدم خیابونی به خودم می گفتم باید با ال حرف بزنم بهش می گفتم ال نظار محفشم نظار محفشم نظار محفشم تو خدا نظار بعد بدون اینکه که محفشم می رسیدم اون طرف خیابونو ازش تشکر می کردم خیابون بعدی باز همین موضوع تکرار می شد ولی به راهم ادامه می دادم راستش نمی دونم چرا ادامه می دادم گمونم می ترسیدم حرفها از باقه بحشو خیابون شست رد نشده بودم همینطور راه میرفتم بعد روی نیمکت نشستم نفسم بالا نمیامد این چی رخ گرده بودم یه یه ساعتی میشد که وزم همین بود آخر سر گفتم دیگه بسه تمومش میکنم میرم دیگه به خونه بر نمیگردم و پامو توی هیچ مدرسه نمیذارم گفتم فقط میرم فیبی و میبینم و ازش خدافرزی میکنم و ایدیشو بهش بر میگردونم و بعد میندازم مفت سواری میرم غرب کشور اول از همه میرم سر تونل هلند اونجا سوار ماشین میشم و بعد پیاده میشم سواری یکی دیگه میشم و باز پیاده میشم سواری یکی دیگه میشم و چند روزه میرسم یه جای آفتابی و قشنگ تو قرب اونجا هم که کسی نمیشنستم و میتونستم یک کاری پیدا کنم گفتم میتونم تو پمپ بنزینی کار کنم و برای مردم بنزین بزنم کارش اصلا مهم نبود همین که ملت نمیشناختنم و منم نمیشناختمشون کافی بود گفتم خودم رو میزنم به کرولالی اینطوری دیگه از شر حرفای مفت دیگرانم راحت میشن اگرم کسی کارم داشت رویتی که کاغذ می نمیسه و میذاره جل دستم یکمی که بگذر خودشون خسته میشن و دیگه لازم نیست تا آخر عمر با کسی حرف بزنم همه خیال میکنن لال بدبخت بیچاریم و به حال خودم میذارم. میذارن تو گلوی ماشین مسخرش اون گاز و بنزین بریزم و بابتش به این پول میدم منم برای خودم با پولش یه کابینه کوچولو میسازم آخر عمرم توش زندگی میکنم. کابین کنار جنگل میسازم نه توی جنگل کنارش نمی‌خوام خوم از دست بدم خودم غذای خودمو میپزم اگه ازدواج چیزی هم کردم با یه دختر زیبایی ازدواج می‌کنم که اینو خودم کر و لال باشه. حتما نیاد تو کابینم و اگرم خواست بهم به حرفی بزنه این بقیه روی یه تیکی کاغذ یه چیزی می نویسه اگرم بچه دار شدیم قایمش می کنم می براش کلی کتاب بخریم و خودمون بهش خوندن نوشتن یاد بدیم فکرشم حالم رو جا می آورد خیلی خوب بود میدونم اونجایی که باید عده کرولالا رو در بیارم خیلی سخته ولی فکر کردم بهش حال میداد. جدی جدی تصمیم گرفتم برم. فقط لازم بود از فیبی خداافظی کنم یههای عین دیوون ها دوم اون طرف خیابون بود پسر نزدیک بود ماشین بهم بزنه رفتم توی مغازه لوازم تحریر فروشی و یه دفترچه یادداشت و یه مداد خریدم. گفتم برای فیبی یادداشتی می نویسم که بدون کجا همدیگر رو ببینیم که با هم خداافظی کنیم و پولشم بهش پس بدم. بعدشم یادداشت رو میبرم مدرسهش میدم دست نازمش که بهرسونه دستش. تحمل اینو نداشتم که همونجا توی مغازه یادداشت و بنویسم پس کاغذ مدادو و چپوندم توی جیبمو، و گازشو گرفتم برم مدرسش توم تون میرفتم مبادو دیر برسم که بره برای نهار خیلی وقت نداشتم آره مدرسهشو بلد بودم چون خودم بچگی همونجا درس میخوندم وقتی نزدیک شدم یه لحظه مکس کردم نمیدونستم الان مدرسه چریختی شده وقتی رفتم تو دیدم عین همون روزایی که خودم اونجا درس میخوندم. حیات بزرگی که تاریک بود و دور لامپاش محافظای آهنیی کشیده بودن که اگه توپی اونجا خورد لامپاش نشکنه. روز زمینم پر بود از خط و خطوط بازی. هنوزم تیره بسکتبال تور نداشتن. فقط تخت و حلقه بود. رسی تو حیات نبود چون زنگ تفری نبود. وقت نهارم نبود فقط یه پسر بچه سیاپوستی رو دیدم که داشت میرفت دستشوی یکی از همون اجازه نامه چوبی مخصوصم از تو جیب روسینش زده بود بیرون که مثلا هرکی میبینه بفهم از معلمش اجازه گرفته میره دستشوی هنوز عرق میکردم ولی مثل قبل شدید نبود رفتم طرف پله ها و رو پله اول نشستم و مداد و دفترچه رو پله همون بوی بچیگی رو میداد. بوی جیش. بلای مدرس همیشه همین برو می میدادن حالا نشستم و نوشتم فیبی عزیزم دیگه نمیتونم تا چهارشنبه سبت کنم چون باید اصری مفت سواریم شروع کنم و برم طرفهای غرب اگه میتونی ساعت دوازده رو بیادم موزه هنرها تا پولای عیدیتم پس بدم خیلی شو خرج نکردم دوست دارم هالدن. مدرسهش درست روز کنار دست موزه بود و موقع نهار سر راه میتونست بیاد پیشم بعد از پلا بالا رفتم که برسم دفتر نازمو یاد داشت و برسونم دست کسی که ببره به فیبی تحویل بده تو تا, تا زدم که راحت باز نشه تو مدرسه جماعت نمیتونی به هیچ کسی اعتماد کنی ولی میدونستم اگه بفهمم برادرشم یادش رو بهش میدن یا تو پله آیز کردم دوباره میخوام بالا بیارم البته نیوردم بردم نشستم بعد یکمی آلم بهتر شد همونجا که نشستم چشمم به یه چیز ناجوری خورد یکی رو دیوار نوشته بود فای نزدیک بود خلشم گفتم حتما چشم فیبیو و بچه های به این از خودشون میپرسن این یعنی چی؟ بعد بالاخره یه بچه بیادبی پیدا میشه که معنیشو به اونا بگه اونا هم خوب بهش فکر میکنن تا یکی دو روز هم درگیرش میشن دلم میخواست کسی که اینو نوشته بودو بکشم گفتم حتماً کار یکی از این ارازلوباشه هست که نصف شب یه واشکی اومده تو مدرسه بره دستشوی یادگاری گذاشته رفته. مدام خیال میکردم گیرش انداختم و دارم سرش رو میکوبم به پله های سنگی تا لط و پارش رو بمیره نه نه میدونستم جرعت همچین کاری رو ندارم میدونستم همین بیشتر ناراحتم کرد راستش حتی جرعت نداشتم با دست از رو دیوار پاکش کنم میترسیدم یکی از محلم ما ببینه دارم پاکش میکنم و بندازی گردن من اما بالاخره پاکش کردم بعد رفتم دفتر نازم خود نازم نبود ولی خانوم هزار سالهی پشت میز تحریر نشسته بود بهش گفتم برادر فیبی کالفیدم که کلاس چهارم رومه بی یک درس میخونه ازش خواستم یاد برسونه دستش گفتم یادداشت مهمیه چون مادرمون حالش بد شد و ناهار فیبی حاضر نکرده باید بیاد با هم تو رستوران نار بخوریم خانم مهربونی بود یادداشت داشته گرفت و یکی دیگر رو صدا از دفتر کناری خانمی اومد یادداشت ببره برای فیبی یهرو صد سالش بود یه کمی هم باش گپ زدم آدم خیلی مهربونی بود براش تعریف کردم که خودم و برادرم همینجا درس میخوندیم از پرسید حالا کجا درس میخونم؟ بهش گفتم تو پنسی اونم بهم گفت پنسی جای خیلی خیلی خوبیه حتی اگه میخواستم هم حسلی کل کلکل نداشتم تازه اگه تو توهم اینه که پنسی جای خوبیه اصلا بذار تو توهمش بمونه آدم بعدش میاد به یکی که صد سالشه یه چیز تازه یاد بده دوست ندارم چیزی یادشون بدم یه کمی بعد رفتم مسخره بود درسته این آقای اسپنسر موقعی رفتنم دادت موفق باشی به خدا حالم بد میشه از اینکه که وقتی دارم میرم یکی هی به موفق باشی اصاسی حالمو میگیره از اون یکی پله رفتم پایین باز تو یه افیوی دیگه ای نوشته بودن خواستم اینا پاک کنم ولی این یکی رو با چاغو رو دیوار کنده بودن و پاک نمی شد میلیون میلیون سالم وقت بذاری نمیتونی نصف افیوی دنیا رو پاک کنی محاله ساعت تو حیاتو نگاه کردم 20 دقیقه تا دوازده مونده بود بعد کلی وقت میکردم تا فیبیو میدیدم اما قدم زنان رفتم طرف موزه جای دیگه ای نداشتم برم. فکر کردم سر راه قبل از رفتن یه زنگ به جینگلگر بزنم ببینم احوالش چطوره. ولی حالشو نداشتم. آخه هنوز مطمئن نبودم برای تعطیلات برگشته خونه یا نه. به خاطر همین رفتم موزه و منتظر فیبی شدم. وقتی منتظر بودم از پشت درهای موزه دو تا بچه بیرون اومدن و پرسیدن که من میدونم مومیایی کجا هستن؟ همون که سوال کرد، زیپ شلوارش باز بود. بهش گفتم همونطور که با هم حرف میزد زیپشو بست بیچاره حتی نکرد بره پشت سوتونی چیزی نخندیدم چون ترسیدم دوباره بالا بیارم دوباره پرسید مومیایی کجان رفیق میدونی؟ من هم یکمی سر به سرشون گذاشتم از یکیشون پرسیدم مومیایی کجان؟ آره دیگه مومیایی همون مردهها تو ببر میذارنشون دیگه آخه به قبر میگفت ببر شما چرا مدرسه نرفتین؟ یکی جای هر دوتاشون حرف میزد امروز مدرسه نداریم دروغ میگفت تابلا هم دروخ میگفت تا فیبی بیاد کاری نداشتم به خاطر همین کمکشون کردم جای مومیایی رو پیدا کنم با اینکه سالها بود پامو تو موزه نزاشته بودم ولی جاشونو بلد بودم شماها هم مومیایی رو دوست دارین؟ آره این دوستت حرف نمیزنه؟ دوستم نیست، دادشمه دادشت حرف نمیزنه؟ به اون که حرف نمیزد نگاه کردم ازش پرسیدم نمیتونی حرف بزنی؟ جواب داد چرا؟ ولی حالشو ندارم بالاخره قسمت مومیایی رو پیدا کردیم و رفتیم توش از اون که حرف میزد پرسیدم میدونین مصری ها مرده چطوری دفت میکردن؟ نه؟ خب بعد یاد بگیرین خیلی بحاله اونا رو میپیچیدن توی پارچه‌ای که بهش مواد مخصوصی زده بودن راز فرمول موادشونو کسی جز خود مصری نمیدونست اونا طوری جسد مرداشونو دفن میکردن که تا هزار سال نمیپوسید دانشمندای امروزی هم نمیدونن چیکار میکردن برای رسیدن به بخش مومیای ها بعد از یه راه روی خیلی باری که پر بود از سنگای مغبر های فراین رد می فراین بچه از ترس به هم چسبیده بودن و اون که حرف نمیزد اصلا آویزون هستین هم شده بود به برادرش گفت بیا بریم من دیدمشون بسه بیا بریم بعدش زد بچک اون یکی گفت اون خیلی میترسه خدافز خودش هم زد بچک وسط مقبر تنها موندم همچین بدم هم نایمد جای امن آرومی بود باورت نمیشه یه خواهی رو دیوار چی دیدم باز دوباره نوشته بودن افیو اونم با مداد شمی قرمز درست کنار سنگایی زیر قسمت شیشه دیوار مشکل حساسی همین بود آدم نمیتونه جای امن و آرومی پیدا کنه چون همچین جایی هستم وجود خارجی نداره خیال میکنی هست ولی وقتی رسیدی و حواست نبود یکی از راه میرسه و افیو قشنگی برات مینویسه و تموم باور نمی کنیم تاهم کن گمونم وقتی مردم و بردن خاکم کنن یکی پیدا میشه و رو سنگ قبرم که روش اسمم و سال آغاز و پروازم رو نوشتم بنویس نویسه اف این حرفا این روز برام روشنه یکی این کارو میکنه از بخش مومیایی که بیرون اومدم دستشی لازم شدم راستش احسال شده بودم که زیادم مهم نیست ولی داستان دیگه ای پیش اومد وقتی از دستشویی بیرون اومدم داشتم میرفتم طرف در خروجی که قش کردم خودیشان آوردم نزدیک بود با ماخ بخورم زمینو درجا تمام کنم ولی از پهلو افتادم دار بود وقتی بلند شدم حالم بهتر بود خیلی بهتر بود دستم از همون بری که افتاده بودم یه کمی درد کرد. ولی دیگه سرگیجه نداشتم ده دقیقه از دوازه گذشته بود و برگشتم کنار در منتظر فیبیموندم آخرین دیدارم فکر میکردم یعنی آخرین دیدار با هر کدوم از اعضای خانوادم چه شکلی بود با خودم گفتم چیزی نیست الان نمیبینمشون ولی چند سال بعد که میبینم شاید وقتی سی و چهار سالم شد برگشتم خونه بعد فکر کردم اگه کسی مریض شد و خواست قبل از مرگ ببینتم میتونه تنها دلیل محکمی باشه که کابینم و ول کنم و برگردم حتی به اون موقعیتم فکر کردم میدونستم مامانم عین چی عصبی میشه و میزنه زیر گریه و خواهش میکنه برنگردم کابینم ولی من بر میگردم. عین خیالمم نیست آرومش میکنم و بعد میرم اون طرف پذیرایی از روی جبهه سیگار یا نخ سیگار برمیدارم روشن میکنم و عین خیالمم نیست ازشون میخوام اگه دوست دارن بیام بهم سر بزنن البته زیاد اصرار نمیکنم تنها کاری که می‌کنم اینه که به فیبی اجازه میدم تابستون و تعطیلات کریسمس و عید پاک بیاد پیشم اگه دیبیم برادر خوبی باشه اجازه میدم بیاد اونجا و برای خودش بنویسه البته فقط رمان داستان کوتاه فیلم نامما از در پرد میکنم بیرون اصلا یه قانون میزنم. آدمایی که میام پیشم حق ندارن کار جهلی کنم آدمایی جهلی رو را نمیدم تو همین فکر بودم که دیدم ساعت شده یک و بیست و دقیقه ترسیدم مبود خانم پیرهی که تو مدرسه بود پیغاممون نرسونده باشه دست فیبی ترسیدم خانم پیره به اون یکی گفته باشه که پیغاممو بسوزونن یا رو باید جوری استرس گرفتم میخواستم قبل از رفتنم حتما فیبی رو ببینم بعد پولاشو بهش برمی گردوندم بالاخره دیدمش از پشت در شیشه ای ساختمون دیدمش. <تص> چطور؟ شکاری قرمزی که بهش داده بودم سرش کرده بود. تابلوتر از این نمیشد کسی و نشون کرد. از در بیرون زدم و پله های و پایین رفتم تا بهش برسم. فقط نفهمیدم چرا چمدون بزرگی همراش بود. داشته از خیابون پنجم رد میشد و با خودش چمدون بزرگی و خرکش می کرد. بزرگتر خودش بود. نزدیکتر شدم دیدم چمدون قدیمی خودمه. همونی که باهاش می مدرسه وطن. برای چی اونو با خودش آورده بود وقتی نزدیک شد سلام داد چمدون از نفس انداخته بودش گفتم خیال کردم نمیای. این چمهدون چیه امرات همچین چیزی لازم ندارم همینطوری میرم حتی وسایلم که كه تو ایسکای نمی نمیبرم توش چی ریختی چمدونو گذاشت زمین توش لباسهای خودمه باهات خود میام میتونم بیام ها چی حرفش سکتم داد به خدا سرم گیج رفت گفتم الانه که کارم تمام شه با آسانسور عقبی ساختمون آوردمش چارلی نبینه سنگی نیست توش فقط دوتا لباس و کفش کالجم و جرابم و بقیه چیزامه. بگی ببین <تصفح> سنگی نیست بگیر دستت میتونم با بیام هولدن هولدن میتونم اجازه میدی؟ نه خفش نزدیک بود از سرما بمیرم خب دوست نداشتم بهش فوش بدم ولی گفتم الانه که بمیرم چرا نمیشه؟ تو رو خدا هلدن کاری نمیکنم فقط باهت میام همین حتی اگه بخوای لباسم من با خودم نمیارم فقط با خودم هیچی نمیتونی با خودت بیاری چون جایی نمیری من تنها میرم و تو هم شو خواهش میکنم هلدن خواهش میکنم بذار بیام هیچیه هیچیه هیچی حرف نمیزنم تو حتی جیکم و تو نمیای. دیگه خفه شو اون چمدونو و بده من چمدون ازش گرفتم آماده بودم بزنم زیر کوشش یا آن گفتم الانه که بزنم یه زد زیر گریه از رو بدجنسی گفتم خیال کردم باید نمایش تو بازی کنی خیال کردم نقش بندیکت آرنولدو تو نمایش برای توه الان چی خیال نداری تو نمایش بازی کنی همین حرفم اشکشو درورد خوشحال بودم یه دلم خواست اونقدر گریه کنه تا بمیره ازش متنفر شده بودم متنفر شده بودم چون اگه با میومد دیگه نمایش باشه بهش گفتم بس کن. دوباره خواستم از موزایی پله برم بالا به خودم گفتم چم مسخره رو میذارم تو بخش امانات موزه و فیبی میتونه بعد از مدرسه ساعت سه بیاد بگیرتش. میدونستم نمیتونه با خودش ببردش مدرسه. گفتم بس کن دیگه فیبی با هم از پلا بالا نایمد خودم رفتم بالا و چمدونو به بخش امانات سپردم و برگشتم برگشتم دیدم هنوز کنار پیاده رو وایستاده. وقتی رسیدم کنارش به پش کرد این کار خوب بلده هر وقت دوست داشت به این میکرد گفتم من هیچ جا نمیرم بیخیال شدم حالا دیگه و گریه نکن حرفم مسخره بود چون گریه نمیکرد. دیگه دیگه.برت می گردونم مدرسه بس کن دیگه فیبی دیرت میشه. جواب نمیداد. خواستم دستشو بگیرم ولی نمیذاشت. بر نمیگشت طرفم. ازش پرسیدم نهارتو خوردی یا نه؟ جواب نمیداد. تنها لطفی که کرد. کلای شکاری قرمز و از سرش برداشت و پرد کرد تو صورتم بعد دوباره پشت کرد بهم میخواستم خودم رو جر بدم ولی حرفی نزدم برداشتم و گذاشتمش تو جیب کتم آهای بس کن دیگه بیا برت میگردونم مدرسه من بر نمیگردم مدرسه جوابی نداشتم بدم یه چند دقیقه همینطور موندم باید برگردی مدرسه مگه نمیخوای تو اون بازی کنی مگه نمیخوای بندیکت آرنولدو باشی نه چرا؟ خیلی هم میخوای خیلی خیلی میخوای حالا را بیافریم. بهت گفتم که من جایی نمیرم میرم خونه تا گذاشتمت مدرسه بر میگردم خونه قبلش هم میرم ایستگاه مترو وسیلم و بر میدارم و از اونجا یه زرد میرم بهت گفتم بر نمیگردم مدرسه تو هر کاری دلت میخواد بکن، ولی من بر نمیگردم مدرسه پس خفش رو نزن اولین بار بود که به هم گف خیلی بد بود این حرف از ساعت تو فوشم بهتر بود حتی نگام نمیکرد و هر بر که دستم رو روشونش دستمو رو پس میزد ازش پرسیدم فیبی می‌خوای یکم راه بریم میخوای بریم باقره اگه امروز نری مدرسه و با هم بریم پیاده روی مسخره بازی تو تموم کنی؟ جوابمو نداد دوباره گفتم اگه بزارم مدرسه رو بپیچونی و با هم بریم پیاده روی مسخره بازی تو تموم میکنی فیبی عین دخترای خوب فردا برمیگردی مدرسه شاید برگشتم شایدم برنگشتم ود یهویی ای بدون اینکه هواسش به ماشینا باشه دویدون طرف خیابون بعضی وقتا خول میشه دنبالش نرفتم میدونستم خودش دنبالم میاد انداختم طرف باغه وش از همون سمت پارک فیبی از اون طرف خیابون خیابونداش میومد اصلا نگام نمیکرد ولی تابلو بود زیر چشمی نگام میکنه ببینه کجا میرم دوتایی موازی هم تو باغ وحش رفتیم بعدش داد زدم فیبی من میرم باغ وحش بیا دیگه نگام نمیکرد ولی شنید چی میگم وقتی کنار ورودی باغ وحش وایستدم دیدم داره از خیابون رد میشود، اون دنبالم میاد باقی زیاد شلوغ نبود چون هوا همچین خوب نبود ولی چند نفری دور استخر شیرای دریایی جمع شده بودن خواستم ازشون بگذرم ولی فیبی مثلا وایستاد که غذا خوردنشونو تماشا کنه یکی داشت براشون پرد میکرد منم برگشتم گفتم فرصت خوبیه که با فیبی حرف بزنم رفتم طرفش پشتش وایستادم و اومدم دست بذارم روشونش که زانو زد و ازم شونه خالی کرد وقتی به خود اذیت کنه قشنگ اذیت میکنه تا شیرای دریایی غذاشونو بخورن همونجا وایستاد و منم پشترش وایستادم دیگه دستمو نذاشتم روشونش چون حالمو گرفته بود بچه خیلی عجیب غریبن باید مواظب رفتارت باشی وقتی از اونجا بیرون اومدیم کنارم راه نمیرفت البته خیلی هم ازم دور نشده بود اون یه ور پیاده رو میرفت من یه ور دیگه خیلی خوب نبود ولی بهتر از قبل بود که با یک کیلومتر فاصله هستم راه می رفتیم. رفتیم خیرس هایی که رو همون تپه کوچولو هستن هم نگاه کردیم. البته چیز زیادی هم برای تماشا نداشت فقط خرس قطبی از قارش بیرون اومده بود. اون یکی که شرسم، خرس, خرس قهوه‌ای تو گور خودش خوابیده بود و بیرون نمی اومد. فقط بوسن مبارکش رو میدیدی. بچه‌ی کوچولی کنار دستمون بود که کلاکابوی گشادی رو سرش بود. مدام به باباش میگفت بابا کاری کن بیاد بیرون درش بیار به فیبی نگاه کردم به این حرف نخندید آدم راحت میفهمه کی که از دست چاکن هر وقت نمی خندن یعنی ازت نارهدن از بیش خرسا که رفتیم از خیابون باری که پارک رد شدیم و رسیدیم به یکی از این زیرگذرای کوتاه. از این زیرگزرهی که همیشه بوی تند خرابکاریه کسی رو میده اونجا میخورد به چرخ و فلک. فیبی هنوزم حرف نمی زد ولی حالا دیگه کنارم را می رفت خواستم کمربند کتشو بگیرم ولی بازم اجازه نداد گفت لطفاً به من دست نزن هنوزم ازم شاکی بود ولی نه به اندازه قبل حالا هرچی به چرخ و فلک نزدیکتر می شدیم صدای آهنگ مسخری که ازش پخش می شد بیشتر به گوشت می رسید آهنگ عزیزم ماری پخش می شد همون آهنگی که 50 سال پیش زمان بچگی من پخش میکردن یکی از نکات چرخ و فلک همینه اینکه همیشه خود یا هنگو پخش میکنند فیبی گفت فکر میکردم چرخ و فلک و زمستونا تعطیل میکنند این اولین حرفی بود که با زد احتمالا یادش رفته بود ازم شاکیه شاید به خاطر عیده اینو که گفتم جوابی نداد و احتمالا یادش افتاده ازم شاکیه میخوای بری سوارشی؟ میدونستم دلش میخواد وقتی بچه تر بود من و الو دیوی باهاش میرفتیم پارک و عاشق چرخ و فلک بود مگه میتونستی رازیش کنی بیاد پایین؟ نه خیال کردم جواب نمیده ولی گفت من دیگه بزرگ شدم نه برو سوار شو منتظرت میمونم برو رسیدم کنار چرخ و فلک بچه کمی سوارش بودن بیشترشون زیادی کوچولو بودن و پدر مادرشون روی نیمکت منتظرشون بودن رفتم کنار گیشه بیلیت فروشی براش بیلیت خریدم و بهش دادم کنار دستم وایستده بود بیا اینو بگیر صبر کن این هم رقیه پولت وقیه پولی که بهم قرض داده بود و بهش پس دادم نگهش دار برام نگهش دار پشبندشم گفت خواهش میکنم نگهش دار حالگیریه که کسی ازت خواهش کنه مخصوصا اگه خواهرت باشه حالم خیلی گرفته شد ولی پولار گذاشتم تو جیبم ازم پرسید تو هم سوار میشی؟ نگاهش بامزه بود معلوم بود دیگه از دستم شاکی نیست شهد دور بعدی حواسم بهتست بلیتا تو برداشتی؟ آره بوده دیگه من رو نیمکت منتظرم حواسم بهتست رفتم نشستم رو نیمکت و فیبی هم سوار چرخ و فلک شد دورش چرخی زد یه دایره کامل دور چرخ و فلک چرخید بعد نشست رو یکی از این اسبای قهوه رنگ و دربوداغون چرخ و فلک چرخ و فلک چرخید و من دور دور شوی تماشا کردم پنج تا بچه دیگه هم سوار چرخ و فلک بودن و این آهنگ چشمانت را غبار گرفته پخش می شد. ضرب جهاز داشت و بامزه اجرام شد همه ی بچه ها میلا رو گرفته بودن فیبی هم رو گرفته بود میترسیدم از رو اسب لعنتی بیفته، ولی هیچی نگفتم اگه بچه بخواد میله چرخ و فلک رو محکم بگیره نباید بهش چیزی بگی اگه افتادم که افتاد ولی خوب نیست آدم بزرگ این اینجور هی گیر بدن نوبتش که تموم شد پیاده شد اومد طرفم بیا تو هم یه بار سوار شو. نه من فقط تماشا میکنم فیبی یه یعنی از همینجا نگات کنم کافیه بهش کمی پول دادم بیا بیا برو باش بلیط بخر پولشو گرفت و گفت ببین هولدن دیگه هزت عصبانی نیستم میدونم بودو الان دوباره را میافته یه حوی ماچم کرد بعد دستش آورد جلو که بارون میاد داره بارون میاد <تصفيق> میدونم بعد کاری کرد که خیلی بهم چسبید دست کرد از تو جیبم کلای شکاری قرمزم بود در و گذاشت سرم نمی فعلا سر تو باشه <تصفيق> باشه بدو دیگه الان را میفته جا میمونی ها او وقت نمیتونی اون اس بشی خیال رفتن نداشت پرسید. راست گفتی؟ واقعا دیگه نمیخوای جایی بری؟ بعدش با من میای خونه؟ آره واقعا نماره بهش دروغ نمیگفتم بعدش واقعا رفتم خونه حالا بدو شروع شد فیبی دوید بیلیت خرید و به موقع سوار چرخ و فلک شد یعنی باز دور چرخ و فلک گشت تا به حسب خودش برسه سوار شد و برام دسته داد منم براش دست دادم پسر از آسمون سیل میومد این چی بارون میبارید هم رفتن زیر سخف چرخ و فلک تا خیس نشم ولی من همونطور روسندلی نشستم سر و گردان و لباسم حسابی خیس شده بود کلای شکاری قرمزم خوب جلوی بارونو میگرفت ولی خب بازم خیس شدم البته همچینم هم مهم نبود یهو از تماشای فیبی حالی پیدا کردم یه حال خوشحالی عجیب راستش از خوشحالی میخواستم گریه کنم نمیدونم چرا همین که با اون لباس آبیش اینقدر خوشگل شده بود و سوار اون اسب اونطور میچرخید و میچرخید حسابی خوشحالم کرد. میکرد کاشون جا بودی و میدیدی